سیر سیوی کم از رسال بسم <تصفح> الله الرحمن الرحیم و و و اختلاف اختلاف آدال خورن با اختلاف اخرین اختلاف از, از علیت شهادت در مبادس فکری و برایات پتلاف به دعزن در بین اختلافی و سوین نیست در عدده اختلاف دارند و اولیگات조 مطلورا در سنبات احکام شرد نمیدوند و خواهش شدن به این اعتمادی به مقدمات عبدی قطعی غیر ضروری نیست به خواهد کسیدت رو با و قدر اگر اخباری این اختلافشون رو با فلاسفه مطرح میکردن بهتر بود این هر پای افکاری این دارن دیگر باقییتی نسبت به مقارس فریصفه ولی نسبت به مباحث افکاری هیچ واقعیتی نمید از اگر افکاری این دارن اختلاف کنه که با ملازفه مدرمی کنن بهتر بود باید با افکاری این بخواندن بیاردن اونم با افکاری این مثل خودشش که مفید و سید مورزا و حامدقیق و علامه و دیگر تا بعد از خودشون مثل وقیده به کانونی و سای اصولی این قدری که وقای فرشما تلاش قداشنها بود. ازا اختلاف بین اخباری و اصولی از این جهات فایده ندارد ولی اگر اختلاف رو با فلاصف کرده بودن بهتر و دلیلی هم میدارن دو تا دلیل میرن اخباری برای اینکه نمیشه به مقدمات عبری اعتماد کرد که قصد خطا و اشتباه در اینها که این یک واقعیتی خواهد نصیر در شرح اشارات قاعد شده به اینکه قواعد عبری بهمیه و مرحوم فندرسکی قاعد شده به اینکه قواهد عبری و عقیات و فلسفه خطا برداره با خودش ایشون رئیس شده به اینکه عروض علاوه بر هواگران اجیا در بشر یا خود ملاصدا آقای شده به اینکه بعلم نه ملاصه میله لتعريف الاجناس الاعلیه الا خصوم ناقصه اسلام حسن علاوه فضل و بلم یوزفر ایشون فرموده به این که هزاران سال دارن تغییر میکنن شهر قرن رو فلسفه دارن ما میدن فرموده بلم یوزفر <تصفح> للکیف به خاص سفن شامل یعنی برای این کیف که از اعراضی تسته میشه ما به یک اعراضی خاص شاملی که همه موارد موارسته کنه پیدا نگید للم یوزفر به خاص سفن شامل بنابراین اختلاف رو با فلاسفه باید مزدر میگنی نه با اصولیه یکی از مباعث اختلافی این درشید که خطا خطاب اشتباه به ازان همه یعنی همه فلاسفه دارن که این خطاب اشتباه درشت هست عمده تریم مساعد اصالت و و ماهی که 800 سال بر طبل موغوم اصالت و زدن از شیخ قربعیس گرفته تا خودم ملاسده چون ملاسده را اولش اصالت ماهوی بوده بعدن اومده با تذکیه و سلوک و امثالین ها قائل شده به این که قبل در اشتباه بودم تا خدا هدایتم کرد به اصالت و موجود و سی سالم بر قبل ممضوح اصالت و دارم میزنند ولی الله این این دوتا چیه هنوز هم وجود چیه ماهیت چیه اصالت چیه، اعتباریت چیه هیچ نیست هزار ست سال از عمر اسلام صرف مسئله بشه که به قول سید جمال الدین ازل آبادی فهم حوزه‌های میه قائل شده به اینکه متفلسفین مشرق زمین قدرت رو ماقومش کرده یعنی محرومیت انسان ها نبود محرومیت خردها بوده فکرها رو جلوش بسن. در کتاب الوربت الوزقای که ایشون نوشته و جلد دوم الوربت الوزقای سیدی از اون در فلسفه و سیاست و این, این در فقه در اونجا باید شده که به اینکه که متفلسطی اینه رو محروم کردن و مشغول چیزهایی شدن که نه منافع دومیاوی داره نه منافع و خویده ماده و صورت حیولا و ماده جنس و فضل اینها چی هستند خرب و که در عبارت خود مصنف هم اومده هر و الیام، یعنی فلسی پاره میشه سوراخ میشه بد دوخته میشه اینها برای چی بوده هنوز معلوم نیست. اینها ها مخالف فلسفی نبیدن خودشون فیلسوف هم دارن این هر کار میزنن یا خود شیخ بحایی یک شعری داره از هیولا تا به این گفتگوی در مصنوی نان و حلوان از هیولا تا به این گفتگوی به معنا آرو از صورت مگید یا چند و چند از حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را هم بنام بزای این حکمتی که اینطوریه به نام فرصده مصطلعه موجود بزا را ساله برم بحث میکنن در اساسی ترین مسائلش اختلاف زنه خود افنید شیخون رئیس قاهل و سالت الماهی هست میگن از سالت و تا اینکه از تلویحات شیخ رئیس گرفته تا تصدیحات سهروردی تا تسلیمات خود ملاسده قائل شده ولی بعدا ادود کرده حالا بعضی از معاصرین قائل شده به اینکه حرف ملا ملاسده رو بدون چونه چرا باید بپذیریم حالا زمانی که از سالت الماهیه بوده باید بپذیریم یا زمانی که از موجودی شد خودو بشه بپذیریم این تقلید محض نیست؟ این بدتن افکار طلبه های جوان موزه ها نیست؟ چرا از این طلب فکر کنم؟ اصالت و وجود و اصالت و ماهیه این واقعیت های چیه؟ الان شما که اینجا نشستید ماهیت شما کدومه؟ وجود شما کدومه؟ شیخ اشراق که مدعی کشف و شهود اشراقه اون چرا بس اصالت و شده؟ همجی رو چهه سال ملازد را پرورش داده بعدن ده سال آخر همور شقایش را سالتون هلولا چیه صورت چیه در نحجر بلاقه یه پیدا کنند مشکل ما درد بیدرمان حوضه ها چیه قال علی و علیه السلام وقلم انه لیسه علا احد بعد القرآن منفاقت یعنی با داشتن قرآن هیچ تهدی در محتاج نیست با داشتن قرآن به هیچی نیاز نداریم نه فلسفه شرق و نه فلسفه قرد نه حکمت یونان و نه فلسفه های و علم و لیس على عهد بعد القرآن من فاقت و لا قبل القرآن و لا قبل القرآن من غنم و هیچ عهدی بدون قرآن زرغی بینیادی ندارد نهز البلاغه مونده زحیفه سجادهی مونده دعای عرفه مونده این همه دعاها مونده چسبیدیم به تعلیقات مثل اشارات و تنبیهات و از و امثال این ها اونم به صورت استحاله کننده نه به صورت خوندن و یاد گرفتن و برد شدن و نظر پیدا کردن چون همه این کتاب های فلسفی رو از انمجات گرفته ها، آخر اصفار اینا رو انسان تو دو سال میتونه یه برنامزی دلیل باشه همین ها انسان میتونه بکنه وقت بعدش بعد از سی سال طلبگی ما هنوز یک دور نخشب بلاغه نکنیم به مردم نمیتونیم نخشب ماده ما صورت باید کنیم. یک دیوان آب رو بذاریم و جو. تو مناظرات تلویزیونی بعد بیان بگیم این پر از آب یا خالی یا نصفه هم اثبات مانده واقع اختلاف هم داشته باشن پس واقعیت ها از این چیز هست این دلیل اولیش این که قاعده به خطا خطاب اجتباه هست خود لا صدران میگه لا سبیل الی تعریف الاشناس العالیه الا رسوم الناقص یعنی ما تعریف واقعی نداریم و همه رو گفتن عقل ببین مواد سلاس در فلسفه هر فول رو میزنه حکم ضرورت، امکان و استحاله هر فول مغاسته گفتن از این نظر عقلی ما راهی به وصول به اینها نداره از نظر کشفی هم که کشف نداره بنابراین فلسفه چی میخواد بگه؟ وقتی مغاست سلاسش با عقل قابل درک نیز و با کشف نداره برای چی داریم میخونیم این رو در رابطه با معاد اصفار ملازدرا معاد رو مثالی ترزیم کرد یعنی نهایت عقل ملازدرا به یک معاد مثالی منتهی شد که مرحوم الله توا توایی قاید بودن به اینجار من تدریس نمی و دیگرانم هم نخونن و تدریس نمی کنن. معاد مثالی اصحان غیر از معاد جسمانی اخباره یا نفس ناطقه انسان رو فلاسفه میگن مجرد روایات میگه جسمان لطیفان رقید در احتجاج تبرسی بخونید اصلا درد به ورود فلسفه برای بستن در اهل بیت بوده زمان محلوم اینا ها را امرده کرده رونق دادن نمیگیم نخونن من خیلی علاقه دارم به که بخونن بایدن بخونن که از این نخونده نمیتون چیزی رو مناقشه کنه در اینکه باید بخونیم ولی به چه بهایی؟ چرا روایات ما چرا نفض بلاغی ما چرا صحیفیزت شادیه چرا دعاهای عظیم و که هست مونده رفته کنار معارفی ما رفته کنار که گیر داریم وستو این اصطلاحاتی که از یونان تا الان کشیدن و هیولا مثلا چیه اشراقی با مشایخ خلاف داره. مشایخ میگه وقتی یک آبی رو ما دو قسمتش میکنیم از پارش ما آب رو میرزیم به لیوان این صورت یه قابلی هست داشته که این دو صورت رو پذیرفت و اون قابلش همون حیولاست اشراقی میگه نه حیولانیست. خود جسم خود جسم که قابلیتی این دو صورت رو داره نافی حیولاست و به جای حیولا خود جسم و قابل میدونه و این همون اصطلاح معروف در فلسفه قرب دیگه اونها رو ماده رو در جسم میدونن حیولا چیه از اصول اشهره گرفته تا افلاک تسعه تا قدمای سمانیه تا اعراض نسبیه سبعه یقینیات سته جواهر خمسه عناصر اربعه مواد سلاس آخرشم رد شدن به سنویت شیخش را به نور و ظلمت شده نقابل قابل نیست که ما مگر اینکه چشمونو رو ببندیم بگیم آقا این آقای هنفانه ما چیزی نمیبینیم در این حکمت بلشتا. و نور و ظلمت رو آورده مسته کرده و این بازتها پیدا کرد در حکمت متعالیه قائل شدن به حیات اجرام سماوی در مقابل خاک و ماده و اینها انت سماک و لهو احیاب فاجی و شمس و قلبون غیر و حل اعضا اون همین آفتابون گفتین قلب قلب عالم افلاک و همین خورشیدی که ابن عربی میگه در بهشت هست گرمای زیادش مال اونهاست اون خوبش مال بهشتی هست. و باز قائل شده به زمین بهشت نیاز به کود داره برای این همه درخت بهشتی بخواد روش کنه ما کود میخوایم. مگه نمیگن اونجا عالم تمام الفعلیه قوه در کار نیست مگه اون دنیا مذهر این دنیا نیست کود رو برا چی میخواد در اثر جلد نهم آورده مطرح کرده که قال بعض اهل کش یعنی ابن عربی که اینطور کود میخواد امثال اینها رو بافته بعد معل اثر ملا را فرموده که این حرفا خطابیه در کلمات نربیه یعنی مشغولات مغبولاته یعنی میخوا ردشون رو... نه خواسته بگی ناره میشه من برش برها نظامه کنم یعنی از بارتره اند سماعه کن لهو احیاؤن و شمس و قلبون قیر و هل اعزاو ول انصری سقیلن و خفیفن به جنب لفلاک بدا تفیفا یعنی تمام عالم ماده در مقابل عالم افلاکی که دارای روح و مدبر الامور هن کجا سر از در میاره افلاک مدبر الامور. بل جعل القوم ول الفتانه اناسرن که حجر المسان گفته تمام عالم ماده با تمامی که هکیشان اینها در مقابل اخلاق مثل سنگ مثانه میونه در انسان سنگ مثانه فضولات مثانه است که جمع شده هیچ اعتنایی بهش نمیشه وقت این رو شما با آیات قرآن ونظر الکد بله که کی رد به شطور میگه نگاه کن برای خداشناسی وقت اون قرآن رو با این مبانی شما بسنجید و انصاف هم داشته باشید انصاف چیز خوبیه انصاف اینه که ابن عربی چیزهایی که گفته هیچ دیوانه این حرفها رو نمیزنه و نیاز بریفتی خونی نه اینکه آقایی بگن نه این حرفانه بریفت فوتوهاتش رو بخونید کتاب های رو بخونی, بخونی. شده به اینکه و اما اهلنار فمعالهم الان نئیم از بد که در صورت نار بعد انتهای مدت عذاب ان تكون و سلاما علمن پیام این حتما باید برگرده و برده سلام باشه برای اهل جهنم چرا به خاطر اهل معاصی اینا در ارتباط با خدا بودن اونهایی که گناه میکردن گناه چی میکردن گناه خدا رو میکردن این کار بدی نکردن نه حرفا میشه بزنی حالا حرفای دیگه در رابطه با دیگر اصول اعتقادی مذهبی ما بمونه ولی حالا اساسش رو داریم بگیم اقلیات قاصر و اکثر فلاسفه به قول ملا صدرا و اکثر فلاسفه در صورت افکارهم اندر که منازل معاد و مقام مواقف اشخاص یعنی معاد رو نمیتونن اثبات خود همین سیاق شده اینکه معاد رو من میتونم از شر اثبات کنم و ایلا عقل در معاست چیزی نمیتونستان یعنی نهایتش قصوره ما هیچ تفصیری نسبت به هیچ فیلسوفی قایل نیستیم نهایتش قصوره و این آخرش وقتی آخرش این باشه لازمه که همه اخبار ما کتاب ما سنت ما همه بره که بگیر و دیگه وقتی دیگه ای نداریم وقتی دیگه ای نیست تا این داره ما بخوام تحلیح کنیم با انصاف میخوام فقط آقای اون بعد از اینکه که تمام شد شروع کنید فلسفه رو بخونید ولی با انصاف بخونید انسان هر کتابی رو میخونه نباید مرید صاحب کتاب باشید با انصاف بخونید این واقعیت ها چیه در امین ابن عربی در کتاب اسحاقی خصوص الحکم قائل شده به اینکه زبیه الله اسحاق نه اسماعیل و اینکه زبیه الله اسحاق باشه نظر یهود نه نظر مسلمان وقت پیامبر بهش تو داده که شما حتما خصوص الکلم رو بنویس و تو این خصوص الکلمت بنویس که اسحاق زبیه الله و درش که معال اهل به بهشت برد و سلامه که بعدا ملاسد را بیاد بگه که نه این نه دار الجهین دیسه به دار نهیم کرد فیوفت دارن نهیم بلکه دار و محله و فیها العذاب و دائم بنابراین خودشون اختلاف دارن اینا وقتی اختلاف هست ما به این اختلاف نیست از وجود یعنی جناب ما کنجا نشستیم وجودمون کدوم ماهیتمون کدوم شما تصویر شده میگن آقا ماهیت عدمیه اون حس که برای وجود ما تصور میکنم بعدا در آلام و شرور و مصیبت‌ها و بدبختی و فقر و نداری میگن آقا اینها چرا خدا اینها رو داده؟ میگن خدا اینها رو نداده چون اینها امور عدمیه عدم رو که خدا نمیده عدم سبب نداره فقر یا یا عدمیه؟ شما چرا از ابن و و و منلاستدار بپرسی که بگن عدمیه؟ شما اینها رو از اونهایی که مددتوی کمیتن دادن بپرسی فقر عدمیه? کوری یک شخص عدمیه؟ نقص قوض در یک شخص نه کداش عدمیه؟ عدم یا نیچه کسی قانه نمیشه ما بیان بگیم آقا این شرط که شما اصلاح هم بهشتغیر میگید این فقر وجودی نیست این عدم و قناست این فقر سبب نداره فقر اگه سبب نداره پس این همه روایات میگه بعضی از امور موجب فقر میشه چیه شبه ناک خوردن موجب فقر میشه این سبب هست یا نیست یا باید نوایات رو قبول نکنید یا اینکه اگه قبول بکنید با انصاف اینا اسباب نیست یا ابن عربی مثلا اومده فائر شده به اینکه البته علامه خازویی در کتاب خودش داره میگیریم که قال صاحب الکرامات قال صاحب الفتوحات و مدع کشف الکرامات منی لم اسال الله ربی ان يعرفنی امام, امام زمان من از خدا نخواستم امام زمان منو به من معرفی کنه ولو سهل کهو لارفقا اگه سوال بکنم اصلا به من نشون میده و من امام زمانم میشناسم بعد از نامه در داره وقا من از زلالت و روایا کیفت صحواه الشیطان و مع نفسه و بما یزهکم منه هستخیان و به تحت اون بهه این حرفا چیه؟ من مات ولم يعرف امام ما مات میتتن جاهلیه اینو قد نقلها الفریقان به طرق عدیده معتبره یعنی الا مزراصیش آمد ما بیایم بگیم این ها نیست کسی بمیره و امام رو نشناسه مات میتدن جاهلیه و این آقا فرموده که من نمیخوام از خدا به من معرفی کنیم و چیزهای دیگه هم که داره و سر از در درآورده و خودشون واسطه فیض میدونند و اینها میگن ختم نبوت معنا نداره نبوت خاتمه پیدا کرده یعنی دنیا منفرض شده نبوت باید ادامه داشته باشه وقت از توهین بکن بکنه در خودت نره ما هیچ توهینی نمیخوایم بکنیم چون توهین ملی گرا توهینی به خود انسانه میخوام با انصاف اینا رو بخونید و فتوحات رو بخونید دیگر کتاب ها رو بخونید آثار رو بخونید شواهد ربوبیه رو, رو بخونید از تحفید بهمنیار رو بخونید نجات ابن سینا رو بخونید بلکه نجات پیدا کنید که انسان نجات پیدا نمی از نجات من بهره بحر ظلامه ابن ترکه در تمهید و قوائد مطلبی داره حتما مراجع کنید و اینها رو پیدا کنید چرا تمهید و قوائد رو نوشته اولین کتاب ارخان نظریه قائل شده که و اصبحت معلقات و هم یعنی مؤلفات فلاسفه اصبحت معلقات و مجموعتا من ظلمات بعضها فوق و بعض. و ما زلمه هم خدا به اینها ظلم نکرده ولکن کانو انفصه هم یزگیم فلاصفه خودشون به خودشون ظلم کرد خب این حرف ما چی بگیریم آخه ما بیاییم بگیم این چی میخواد و خب فلاسفه رو خود ابن ترکه داره رد میکنه بگیم مؤلخاتشون ظلمات لذار گفته تعمید و رو بخونید که دیگه از اونها خلاص بشید هیولا چیه؟ هیولا ماده قابله بعد ماسه قابل رو وقتی شیخ اشراق ردش میکنه یا باید قائل بشیم دیگه این ماس دیگر شده و هیچ معقولی قابل نیست یا اینکه قائل بشیم به دیگه کمال در مسلک شیخ اشراق معنا نداره چون کمال همیشه استعداد و قبه و قابلیت و ماسه شما چون ماسه رو رد شدید چون هیولای اولا رو رد کرد. دیگه معنا نداره شما قائل به کمال بشید کمال استعداد میخواد قوه میخواد قابل میخواد و شما این نفرش کردید قاعد شده به اینکه جست همه کاره اگر جست همه کاره باشه یا شما ما شدی و محسوسات رو قائل شدی، معقولات رو رستش کردید یا اینکه اگر قائل به معقول هستی خب جست معقول نیست جست یقینا محسوسه حالا یکی از این اختلافات رو شیخانساری در وسایل آورده با اون خواهد میگهد همه چیز رو داره یکی از مسائل سخیه 53 از این چاپای کنگره که امین از ترابادی قایش شده به اینکه حرف من رو اگه کسی میخواد باور کنه که اینا اختلاف دارن و خیلی مشکل دارن خودشون با خودشون اینه که یکی از اختلافاتشون رو من میارم و من الموزه ها و موزه ها و که لواظه که اقلیات باید برکنار کنار اینه. ان لاجثه فی منطق قانون و یه عن الخطا فی ماده الفکر صورت ها رو در شکل های 4 تا شکل ما میتونیم یاد بریم ولی ماده شما نداریم چرا چرا ماده ها را گفتن اخه گفتن برهان از این مواد بعد خطابه از این مواد مشهورات و همه همرا گفتن میگه اونم گفته باشه ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این جزء یقینیات یا جزء مشهورات ما چی میدونه ان المشائین ادو البداهت فی ان تفریق ما اکوزن ادا کوزئی اونا باجرا میگه اگر یک کوزه آب رو شما دو قسمتش بکنید این به داره که تفریق یک آب و آب اعدامون لشخص این شخص و یک آب قبلی از من میره مثل که آبی که در پارس بوده شما ریختی به این سه تا لیوان رو تمام شد اعدامون لشخص آب قبلی و اهداسون لشخص این آخره و سه تا شخص یا دو تا شخص دیگه اومده و انا هازه مقدمت الاغلیت بناو اثبات الهیولا به این مقدمه هیولان اثبات کردن و قائل شدن چون گفتن اون قبلی که یقینا از بین رفته این ستان که خرق العاده نشده خرق عاده نشده و از کسم عدم که بده، این آب همون آبه لذا این سه صورت با اون یک صورت قبلی حتما یک نخ ارتباطی داره و یک چیزی بوده که قبلا به اون صورت در اومده بود در پارش بود الان به این صورت در اومد شد تا اون چیزی قابل این صوره نوعیه متعدده جسمیه هست اون چیه هیولاست هیولا, هیولا اگه بخواد نمود پیدا کنه حتما صورت میخواد هیولا خودش لا متحصله هیچ تحصولی نداره در ابهام مطلبه و اگر بخواد تحصول داشته باشه حتما محسلی میخواد و اون صورت رضا تشریح کرده حیولار و ابن سینا در اشاراتش به اینکه که الحیولار کلمرعت دمیمه این نگارتشو من اگه یاد تشارده باشم Thank you. یادتاش دمیمه، یعنی مثل یک زن کریه منظر میمونه که قصد تت وجه ها به نقاب که صورتش رو با یک نقاب مقنعی پوشونده و اگر این نقاب کنار بره قط تت وجه ها بکن این کنار بره با دست خودش این رو میپوشونه که دیده نشه رضا حیولا از اول از بچگی تو ذهن همه میاد که همون هفتون که بچه ها رو میگم به خاطر که ایشون اینطور معنا کرده و همین معناهی که گفتن در خود جوزوها نهشتم یعنی یاد تو جوزوها هست الان یادم شیخ و شفا به قولی هی... یعنی در شفا اومده اینه الهیولا که المرعت الدمیمت المشفقت انسخیلان قبه ها می ترسه که قبهش معلوم بشه و مهما یک شب قناه ها وقت قناهش کنار بره دستت مامتها بلیکن این زشتی خودش رو با آسینش میگوشه هیولا یعنی هشتیم ایشون به اینه حالا انشا دو داحت میند تفیر و ما زندار بوده ادام شخصه به دااز اون شخصه این آخرین و یقین داریم به اینکه این از کف معدم نیومده یه چیزی بوده که قبلا اون صورت در اومده قرار به این صورت در اومده و اون چیز چیه حیولا. وقتی شاقگین در مقابل این ها خخ و طرف دارانش و البدا حتفی انهو لیس اعداماً لشخص اول کی گفته اعدام شخص اول و اینما این ادمت صفتون من صفاتهی و حوال اتصال صفتی از صفاتون قبلی از بین رفت اتصالش از بین رفت قبلن این صفات با هم متفصل بود حالا اتصال از بین رفت حالا این در جزبه خودمون نوشتیم صوفا شما خودتون بخونی ولی محسنش اینه که اتصالش از بین رفته ولا خود اینا به همون لذا ما یک ماده قابل این صورت رو نمیخوان چرا؟ بخواهد نه که اتصال عرض نیست تا بیارده اتصال در مقابل اتصال حتما یک ماده قابلی میخواد نه اتصال از اینش داره ما اتصالی نمیبینیم اون صفت اتصالی که از بین رفته این موهوم چیز واقعی که برای اینها بوده و الان هم هست امتداده ما اتصال نداشتیم قبلا قبل امتداد داشت این خط تا آخر کلاس امتداد داشت شما اسمش که اتصال بعدا من اتصال از بین رفته و منفصل شده نه قبلا هم اتصال نبود قبلا هم امتداد بود الان امتداده قبلا نحوه امتدادش اون طوری بوده که در پارچ بود الان نحوه امتدادش به همین صورته اون آب در این ستا ظرف امتداد پیدا کرد. لذا نگو اتصال که بیایی بگی این ماده قابل انفصال پس چیه نه امتداد بود الان هم هست لذا جسم خودش حیولاست در مسلک شیخ اشتاق جسم خودش حیولاست جسم خودش ماده است جز قابلیت داره به این همون فلسفه غرب دیگه فلسفه قربی که الان چقدر دهم پرکن شده دکترا فلسفه غرب و همسال اینها مگه این حرفاست فلسفه شهر اینطور فلج شده فلسفه قرب چیه یعنی شما خیال میکنید شیخ اشراقی که ما با ابن رشد بوده اون در غرب این در شرم اومدن بعد دو تا فلسفه زده هم پوبیدن اینها فایده داره مال غرب وارفته تر از شره ولی خب بینا میخواد، اونقدر الان این بیماری بی انصافی و بی تعاملی بی فکری زیاد شده که دیگه هیچ امیدی نیست انسان نمیتونه حرف بزنه که حرف بزنی میگن آقا مخالف فلسفه نه واقعیتو میگم بگیم و این طلبه که فلسفه رو نخونه از اولش تا آخرش اصلا طلبگیش خواهم پیدا نکرده. باید بخونیم ولی بعد از خوندن چه نتیجه باید بگیرید؟ اینکه ما باز مشغول هیولا و صورت بشیم مثل همون مطلبی که شهید ثانی در منیت المرید قائل شده به اینکه فلاسفه رو تشبیه کرده به این شخص مهمان که کسی شما به مهمونی دعوت کنی بیاد از اینکه بخوره تشکر کنه استفاده کنه از نعم سفره هی به در و دیوار نگاه کنه بگی اینجا نمیدن دوشه داره اونجا مسلس با و و اینجا نمیدن چیه و هی به این نگاه کنه این توهین به صاحب کنه نیست؟ انصاف میخواد انصاف الان نیست به قول شاعر عرب زمان عبوزعی به حوزعی که این رو در مغنی هم خوندید این شعرش رو و در مختصرم و در کتاب های بلاغی هم حتما خوندید که ازلمنیت و انشبت از فاره ها الفیت کل تمیمت لا یعنی وقتی مردی که حکمی بشه دیگه هیچ بازوبندی فایده نداره هیچ دعایی فایده نداره ما رو دعا کنیم دعا کن آقا وضع حوضه ها بهتر بشه نمیشه با این سهی ای کلان هست آقا شما حق فکر کردن در فلسفه نداره شما باید مطیع محض فلسفه ملاسد را باشید اینو کی گفته؟ کدوم آیست؟ پس چرا اللهم تبا تبایی میگه معاده ازفار رو نخونید و خودش هم تدریس نکرده؟ چرا قائل شده به اینکه بعضی از حرفهای ابن عربی دقیقه؟ بقیهش قابل اعتماد نیست؟ ما یعنی از خود اونها داختری راهش فکر رو کسی بر خودش ببنده مرگ شتمیه از المنیت و انشبت از خاره ها الفیت کلت همین مثل لاتن این شعر رو برای ما گفتن یه شاه مثالی برایش میآوردن که الفیته ها دو و مفهولیه. باید نمی گفتن چرا دو مفتوله چرا این فعل وجهت نگفته الفیته گفته دو مقولی آورده برای اینکه برای ما باز نکردن نمی میشه این شعر چی می بگه بگیر فکر کنید همه اینها بخونید؟ ولی فکر آزاد می‌خواد فکر آزاد میخواد این یعنی تعقل ما با عقلیات که بهش نمیرسیم اینا خودشون قائل شدن که ما نمیتونیم و افکار فلاسفی گفته قاصر از وصول به معاد ما نمیتونیم اثبات کنیم و شیخ الرئیس قائل شده به اینکه قاصره و انسان اصلا قدرت نداره برای وقوف بر, بر حقایق اشیاء ما چرا اینا رو نادیده میگیریم حالا در فلسفه رشته هایی رو میذارن، رشته هایی رو میدارن شخص در انتخاب میکنن بشته یه فلسفه میخونن میرن میخونن دکتران میگیرن این ابتضال در فرهنگ نیست افتضال در علم نیست فلسفه اهل میخواد، فلسفه رو باید اهلش بخونن با اهلیت باید بخونن به موقع باید بخونن آخه این بدایه‌ی هشتمی کتابه چرا اولین کتاب داره تدریس میشه چرا وقت طلبه ها رو در کنار درصایی و مکاسب میگیرن البته هر کسی خودش اختیارش رو که سر نمیکنه قوانین حوزه اختیار انسان رو سر نمیکنه لذا نمیشه بیای تمام گناهان رو گردن اونها بندازی گناه گردن کسی که اختیار داره شخص مختار مقصد شما اختیار دارید اونها رو بخونید ولی با مقدماتش با آدابش، با اصولش الان یه موقع بیا بیدید آقا ابن عربین که رو دفته رو دیگران قبول کردن ما هم قبول داریم ولی ما مقلد ابن که نیستیم مقلد ابن نیستیم مقلد ابن سینا نیستیم و هر پایین ها رو که صد درصد نمیشه انسان قبول بکنه نیاز به تعمل داره با انصاب اشخاص بخونن بعد تعمل کنید مباحثه کنید این هیولا، صورت، جسد، فرص این چی میخواد بگیرد؟ این فرقشون چیه؟ و اشراقیین ادوان بدا حتی که نموده ایسای دامن به شخص اول و این من عدم از من صفاته. ثم مقام ازعرت من دقیقه حالا بنابر عقلیات و مطلبا ایشون اومد تلاش کرده عقلیات و مطلبا رصد کرد و قائل شده به اینکه در حیته استنباطات شر فقط کتاب و سنت و این حرف مثمیه واقعا حرف مثمیه که در حیته احکام شرعی فقط کتاب و سنت. اگر کتاب سنت باشه ما میتونیم احکام را استنبال کنیم و احکام همه قائلن میگه دین ما منطقه الفراغ نداره یعنی یک مسئله باشه که ما در جا از دین چیزی به ما نرسیده باشه نداریم منطقت الفراغ برای دین ما نیست و این دو در حلقه دو احتمالا شیست متعرضه منطقه الفراغ نداره یعنی نه اینجا دیگه دین چیزی نگفته ما از عرب یا اینکه قائل بشین به اینکه بدون فلسفه فهم دین میسر نیست پس اونهایی که فلسفه رو قبول نداشتن مثل شیطانی دین رو نفهمیده بودن بخواد این فلسفه نخوندن بگید این حرفا چیه؟ حرفا معاخذه داره ما یه هر جه بزنیم که افکار رو مناطق کنیم به جاهای دیگه یعنی چی بدون فلسفه فهمد این مشکل مایستر نیست بین همش در کتاب سنت هست یعنی الان در رابطه با اون ازیر پیغمبر که همارش بعد از صد سال خوشیده بود رستخونهاش پرد پرد شده بود قرآن میگه ما این علاق رو براش برگردوندیم یه معاد جسمانی بهتر از این که خدا قادره ما میخوایم با عقل بهش برسیم خب ملاسدران گفت ما نمیرسیم پس شما به چی رسیدیم؟ من این از میخوایم از ملاسدران بپرسم شما وقتی به یک حاسته شاملی برای کیف از اعراض نرسیدید پس به چی رسیدید؟ بذاریم رو آوردن به قرآن، به شرح کلمات اصول کافی حالا ما با دیده انصاف نگاه میکنیم و میگیم شرح اصول کافی که کنلا سدازده راقا هم خوبه حالا بعضی از مترجمین قائل شدن اینکه اول و من شرح قوبه کف من اونها قائل نیستم کف نیست منطقه بعضی از اقلیات در این شرحش داخلی اونا را اگر انسان تاثیر باشه نمیفهمه. کجاها رو قبول بکنه، کجاها رو قبول نکرده. قرآن داره میگه و عباد رحمان، الذین یستمعون القول و یتبعون احسنم. چشم بسته که نمیشه قبول کرد. شرح اصول کافی که مال ملا صدراش خوبه، منتها، اون خوب رو باید خود تشخیص بدی. بر ما چیزی نباید دیکته بشه. خودمون باید به موقع بخونیم، بفهمیم. قبول کردی قبول کردی قبول نکردی یا نیشی همه اختلاف دارن یعنی این اختلاف یه چیزی نیست که تا این چهر قرن به کسی اترایت نکرده باشه هستیگه اومدن گفتن و بعد به همه سرایت کرد بعد حرفا اینها رو همه بعد تقییه نکنیم آقا اینهایی که مثلا ابن نرابی گفته تقیه بوده آقا تقیه در این حرف بهتر نیست انسان کشته بشه و این حرفا رو نزنه بهتر نیست ان حیات، عقیدتان و جهات شوقی میگه در شوقیاتش عقیده ما از دست بریم که میخوام زنده بمونیم اون زندگی نیست زندگی با عقیدت تقییه در این هم چرا توضیح کنیم لذای فلتاتیه اونها را خودشون رفتن شاید برای خودشون حسیت باشه ما کشفیات اونها رستن این کار نمی کنیم شاید هم اتفاق افتاده ولی برای خودشون حسیت داره برای ما که حسیت کشف ملاسات ها برای خودش حسیت کشف علم ذاتیه علم و که نیست زادیه برای خودش خوب هم. مثل مکاشفاتی که شما ها دارید برای خودش شخصو نه برای دیگران ما اینا رو هم نکردیم که امام یه است مطلقاً در چیز ما مخطع هستیم در فکر میگن مخطعیم در فضلخم مخطعی باشیم چرا در اونجا مصفبه باشیم اونجا میگن مخطعی دیگه خطا هست دیگه ما علمی به واقع نداریم در اهل بیتون بستن ما بیشتر داریم میبندیم ما خیال مکنی بهتر از زمان اهل بیتیم خدا میدون اینطور نیست ما اگر بودیم خدا به ما رحم کرده که با اهل بیت در میکردیم که الا نگه. ما دسترسی نداریم ما خیال نکنیم ما خوبیم اونا بد بودن اونهایی که که با بایمان باقید افتادن اونا که که امام صادق افتادن با اهل بیت دیگه افتادن ما هم بدتر از اوناییم ولی خب خدا به ما ره کرده ظاهرا این چیزها رو برداشته به خاطر الان دیگه یک عذری برا خودمون میتونیم بسازیم ولی اگر این اختلافات نبود همه جمع میشنن در کنار که اعلم و به طرق سما من طرق العرض لا قائلیت تیر اینها چیه؟ اینها رو چرا تفسیر نکردن؟ چرا اینها مونده؟ چرا ما یک ترجمه خوب از قرآن هنوز نداریم؟ که واقعا طبق ادبیات عرب بیاد و تفسیرش کنه نه با مراجع به لغت هنوز ما ترجمه خوبی از قرآن نداریم هنوز ترجمه خوبی از نحس بلاغ در کار نیست غیر از آن ترجمه خوبی که علامه شهیدی برش داره بقیه یک ترجمه ها ترجمه نیست اینا نفت نیست یعنی شد هفتاد هشتاد درصد خوبه ولی خب یک ترجمه مناسب با خود این نحس بلاغ ما نداره چرا به جای این کتب اینطوری ما دیوان سید رضی رو تدریس نکنیم پر از معارف و ادبیات چرا دیوان شیخ صفیت دین هلی رو تدریس نکنیم که ابن خلدون عالم متعصب سنی مخالف شیعه قائل شده هیچ اهدی بهره از بلاغت و فصاحت نمیبره مگر اینکه اعتنای وافی به این دو شعر داشتیم این دو شعر دو دوتا شیعه ما چرا نمیخونیم با این آیام که میخونیم فایده ندارم درس خارج فلسفه و, و اینها آخه با این ملابسات امروزی پایدی نداره ما که خودمون نمیتونیم تذکیه کنیم تهدید کنیم برای چی حکمت میخونیم یا بیام بگیم نه اینها امور عدمی یا چیزهای دیگه مالی سموزونم لبعض من نقم ففی نظام کل کلون منتظم برخلو. آه. برای مباحث فرداوین ها یه 17 سفر جزوه نوشتم از مباحث که مونده بود و مباحث قطع قطع این 17 سفر آقایین بخونند تا فردا که مباحث دیگه اقب نیفته که دیگه این جزوه هایی داره میدین محسل مطالبش رو ولی از روش نمیخونه کما که خود کتاب رو هم بعضی از موارد مثل میخونم بعضی از موارد نمیخونم کارشون پس سنگینتر از کار ماست وقت بذارید هم متن کتاب رو هم این جزوه که هست حتما پیش مطالعه کنید پیش مباحثه کنید بعدا تشفیر حالی این جزوه ها رو حتما آقایم بگیرن اونایی که این کلاس میان بدون جزوه یک بال داره، و دو بال میگن آقا کپی بگیره بعد بعد, بعد دور یه جا قرار مدار که دوستانشون ازش بگیرن مال ده روزه بعد از مال آینده من امروز این برزای فضلوی مرزای کردن جهره یه نوزی جهره مرزای شده خب ارچند بگیر یه مقدار بعضی بگیر از آسمانی بار حالا، از حالا، یه از یه